به منصور سین بالغ حواس که از اون خیلی و باز اشاره به شخص مذکر در حسن. خط سبب مال طازج جوانی که خصوصیاتش شده و هر که خط سبب زشت سر سودا باشد سودا عربی به معنی سیاهی سواد با سوژا و به معنی اون خلط چهار خلط یک از چهار پمیزه بدن که قبلن دوتا نزده کن ولی سوژا معنی معامله ظاهرا فارسیس شاید من نیتونم الان دقیق بگم بران که این مطالب خیلی خطرناک دفتن اشگاهی وجود نیست ممکنه با سود و سودا یعنی آمدن سود در بر معامل آدم به هوای سود معامله میکنه. شاید با اون معامل باشه. من کتاب رو ندیدم، من رو اون نمی تونم بگم. و انقدر شما بگم که بعضی چیزا باهی، به قدری هم همشبیه که آدم فکر میکنه که این همون خودشه بعد بر فارسی صفت دیده در انگلیسی هم به همون معنی درست و آدم فکر کنه این همونه بعد انگلیسی اصلا میعنی بچه همون بست و هیچ را هب کسی بود فارسی ندید چیزی دیگه, دیگه. رضا میکنید، این است که به این حساب پرداختن کار خیلی چیزیه ممکنه نداشته ولی من خاطر شما رو توجه دادم این مطلب حالا اگر من یادم مونده و فرصت کردم خودم میرم تراغش و اگر نه که چیز اگر نه که خود شما مثلا توی احیاناً برهان قاطع چاق مران دکتر مومین اگر شروشیم اونجوره نگاه بکنیم شاید باشه احلادی چه بدن نب بدن چیزی ممکنه باشه یا نوشه و هر حال صودا معامله اینجا هر که رواحط سر زد سر صودا باشد یعنی سر و یعنی بهاید به حساب واقع در این باب میگه که اگر کسی مراوشون نیست که اگر کسی صودای عشق تو در سرپخت دیگه از این صودا نمیتونه بیرون بره هر را با خط سبز از سر سودگاه باشد نسخه معلوم خانلوی انتخاب از یه و هشت نسخه هست چار نسخه هست پای از دایره بیرون منه حتی باشد چار که از اون به نسخه معلوم قضی نیست نسخه سربراهین خلقالی هست پای از این دایره بیرون منه حتی. اگر این دایره باشه مراد همون دایره خط سبزه هر که را خط سبز را کسر از باشد تا از دایره بیرون نمهد تا باشد به نیزا وقتی که همین مطلب رو, هم رو تأیید می کنی. من تو از خواه با لهد فرقی به باقس تو گوی تام سر سوی با باشه. به اون خش تیز یا سنجیز که زیر صرف می‌دوند، اونو گشتن به هت. ها که به هت اینجا نیست، ها که دور من تو از خاک به لا باعث برخیزم؟ لاله برگش داختره، لاله های تیرون ایران داختره، رفتن باهار اومده و خب ارویفا املا اصلا بالا هست، این چیزی ساخته، آمده بشابه سناتوریه و مسئلی بوده و و که سل مال نبود با هرم سل کوهنه که سر پیگه عذیتش میکرده نفرستنش که اونجا بخوابی تو آساوشگاه داری سر کوهی یک دهجادهی بنامون لذن و اونجا بود مدتی و حکیان مولت بعد ما هده قرم سطحان اول تحصیل مامی که سازف کرد طول ساناتوریون به ها و هم که کار از این مهمتر دیگه توی من ما لذار کنم باید البته بایرم حقشو باشید سر کخه بازش کختر نویحی هر برد نویحی ها کنگه ازرائیله به خلاف زدش میذارن کنان که مرگزیگارو برای فال نیفتش میگن سلیم یعنی سالم سلیم یعنی مرگزیگار فال میزنن که انشاءالله نیمیده همی دو ازرائیلو میگن ها بوگه یا بوگه یا کرسته نه میگه حکیمی به جایی هست بوگه یا برفت حکیمی به جایی هست باید دا که دارو نرکبه و جا و بر بسن بر بر ارز کنم که با یه یک شعری داره در همون سویس ساخته میگه ملک جنم چون سویس باغ ندارد، لاله ی داغ ندارد. <تصفيق> آخرشنگی که جای غزل رفتن بحار هم جاستهید که نسکین ملک قنق ندارد. و من چو از خاقلهت لاغ سفت برخیزم داغ سودایتو هم. سر سوویده باشد راجر سر سوویده به تبصیل تمام بنده حرف زدم و از دوستان عزیزی که در اون جرس نبودن اینو از رفقهایی که گفتن گفتن بگیرن دلیل این که خیلی وقت میگیره و چیزم نیست یه بار مشتر لازم نیست دن بگیر ندار وقت میگیره بطور اجمال می که یه نقطه سیاه کوچکی در دل آدمی هست نمیدن سوویده سوویده یعنی سوویده کوچک یعنی سیاه کوچک که بهش هبطل قلبم میگن و تمام این که میگن که آدمی خلیفه خداست و روی زمین اون صدر خلافت و امانت الهی بر اون نقطه سیاه دل. بنابراین سوویده دل یعنی دیگه اون آخرین نقطه انسونیت امسونیت به اعتقاد قدومه این اگر چیزی به نام الفی نزید داره در نزد سوتیه در اونجا به امانت درشده شده سعدی میگه نه فلک راست مسلم من ملک را حاصل ام چه در سرق صدی دای بنی آدم از اونست خیلی غزل زیبای داره به جهان خور رمزانم که جهان خور رمزان از اونست عاشقم بر همه آلم که همه آلم از اونست نه را راست مسلم من ملک را حاصل امچه بر سر سوویده و بنی اعظم از این کسیم آخرشنگی سعدی اگر بکند سید تناه کامی آن دل قوید که بنیاد بقا مختن از این کسیم برحال سوویده و سر سوویده این است بمگه که من اون روزی که مثل لالو از خاک لعد برانتیزن بر سر سوویده ای من دوده های توست این صدوده امان یه خیاله و همون عربیست و همون اون عمیزه اون یکی از چهرخلت تشکیر دهنده بدنه که میگن قلبه اون اونجه خیالاتی سدن و مالی خونگاه سدن و اگه زیاد قلبه کنید جنون میشه و تحیل اینا تحیل و تفتر و خیال کردن و وهم اینا نفیجه اون قطعه صدوده من چو از خواهد که بهت لاغ سفت برخیزن داغ سو داغی تو هم سر سو ویده باشد تو خودی گوه هر یکتا همین خجای آخری تسقن دیده مردم همه دریا باشد ارز کنم که تبینیست که اینجا گوهر قرنی موربارید میره برای که گوهری که در دریا پیدا شه فقط مورباریده اسم اصلی موروارید، اسم خود موروارید، دور، دور، به معنی موروارید، نهی چیزی بلی چون ما واقعی جدو گوهر میشدن به طور امون دو گوهر اسمی که با همه سنکه های قیمتی داده میشه از جنگه موروارید دور رو بهش میگن یتیم، دور رو یتیم که میدید چه میگن یتیم یعنی این مزدیرش نیست پدر هدار هیچیچ مانند ندارید یه دو مثلا بنابراین گوهار یکدانه که این یکدانه به معنی همیست که مزدیرش پیده ندارید تو خود گوهار یکدانه کجا آفر تزخنت دیده مردم همه دریا باشه. یک معنی دریا هم رودخونه است و گفتم این مطلب رو و در اسمای روکانه های سیحون و جیحون هنوز هم سیل و اونو دریا هست هم دریا همینی و شه همه داریم مهنگان برای در دریای نیل دریای نیل در دریای نیل؟ در. از بون هر موجه هم بیا اگر میل میله لب جوی تماشا, تماشا اصلا به نعنی با هم قدم زدن از معشیه معشیه به رفتن رفت. و تماشا یعنی با هم رفتن منطقه راه رفتن چندین جوره دقیقت نکاریم. شاید اگه تو خیامون باعثیم و را راستن هم از کنیم فوری حس می کنیم. یه ادهی هستن که دارن میرن مثلا هم یه مقصد میرن. میرن بگیرن. من میرن بگیرن. من یه ادهی دیگه هستن که تا نگاهشون می کنیم که هیچ مقصدی رو خود همون داردن نداردن. این که عربش می‌گیم می دیگه کسانی که اون دوره جربونی ما تو تیاروها استنبول خیلی خدم می‌زنم اونجور گردشگاه بود، تنخیزها، جربونی ها پانونه رو هاشی، کنونه رو هاشی، کنونه چشچه رو می‌می‌گردیم بلقه و هرخاصی ها بنا بکره بکره بگره عرض کنم که کسانی که اونجور رو هم می‌رفتن رو که نوت درستده این آلان ها کسانی هست دنبال کاری او روش میگن تماشا منتها همیشه در این مورا رفتن چشم هم کار میکنی چشم هم بیشتر از پاکار پا میکنی اینه که کم کم تماشا به معنی دیدن شده از رفتن ولی اصل مطلب اینه و میبینید که از همین روزا هست و حافظ تناشا خانه داره چیچی از چی دلپش تناشا خانه باد سباست لغت تناشا خانه که بعد بارد ساعت کار دردن از درو حفظ هست تناشا خانه اینجا آگاه که میران برای که یک ای چیزی ببینم حقای زلپش میران چیز دلپش تناشا خانه باد سباست یعنی باد سبا اونجا قبرا پر هر حال تناشا از دوری حافظ و حتی از دوره فعدی یک قرم از حافظ تماشا و همین معنی که من را داریم، کار به تماشا، گه زلفش دل به حافظ روزی شد که باز آیدش جا بید که افتار میرسیم از بان هر مجه آب عبرقن است بیا اگر ات میل لب دیو تماشا باشه. در زن در شیراز اون خونه گونده که برن چیز کنن نه اما اما سهرای رسیار خورنن پاکیزهی شده و هوای مقدلی که دکتر سوزتگار توی اون خدا رحمت کنه یکی درخت بابم و نه بهمن احمم سکیفه یعنی یک مفت استند یعنی کنید از یک مفتید می کنید هوای پایش هر که گل به سر برزن آقارد، کیا از را دوباره به یاد من آقارد؟ انجا که گرد شهر که گلی آوزی که هست، گلچین به تو یک خرمن آقارد. نظام هوای فرس و از اعتدار آن، بادن، نه بهمن آقارد. آتش به کار، ناوید من روز گاه دی که صغی سیتن آقارد. صاحبی که می به مجلس اونساست نزده مرد چون روز این به گشت می یه روچن آورد علا خیلی از کنم که این صحرای فره بخش که از پسفند مخ سبز می شود مردم شلاز اهم از مقدس یا عرقور فرق نمی کنه توقات مختلف مردم روزای تحقیلشون می گیره صحرا و باغ و صحرا هم پابین سعودی میگه که گویا که باصه بهارا تا من و تو به هم به دیگران نگذاریم باغ و را یا به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را هر دو درست همین می‌رفتن و همین یه جو کوچولو آبی که چیز چنگنام اونها جو روکنوادشون مثلا رو الان هم جوی پوچکیز بوده بزرگی من روشتن اینست که تا جوی بوده سبگی هم کنارش بوده و وزاکشون خواهم کردن و میشستن و هست بگیرم از بگون هر مجن ابروان هست بیا اگر ات میده لاب جوی گو تماشا باشد چون دل من دمی از پرده برون او درست که دیگر باره مراقبت نپلگاه باشد این خوشتاریست که حافظ خیلی وقتتون و قمیمات پشمالی. هر هر وقت خوشت باست باحت مختنم شما قصر آفدید نیست فرصت چما صحبت پس این دورا من زلطن و زرین دیگر به هم رسیدن بسیار اینو میگه تو آقا فرصتی که داریم وقتی که داریم، این الان هرکار میخوان کردن یعنی از سین بخونیم فردا و فست ممکنه اصلا نباشه چون دل من دنی از پرده برون اوی اینکه من از پرده برون اوی چون دل من دنی از پرده برون اوی دره، دره یعنی از دره من گفتیم که دگرباره ملاقات نه پیدا باش معلوم نیست در فیضی ملاقات یعنی با هم دیگاه دیگاه دیگاه ملاقات نه پیدا باشد و ما اینو واقعا نمی‌فهمیم. بسیار کسان هفتاد سال، پنجه سال میره دنبال پول و هر چیز دیگری هیچ کار نیرم بلد. هر چیزی چی. همه چیزشو گذاشته باره فردا برای پس فردا باره یه روز دیگه اون روزی که یه اون روزی وجود هر کار که ها پنیاسی همین علام بکنیم اگر قواهو بکنیم من بارها به دوستان رو میخوام نشستی که خونه میخواه بخری، نشستی که یه صد زادت هم صد زادت کل اون دو راضیه که خودمون مغزگیر بیاد بری رو یه خودمون هر چیزی هیچ اتفاق نمیفته. برای عدم معطوباس وضعانه مسلمان ده و, و, و هر کاری بچردنی سیاسی و همون غرور نیمه کاره و همون چیز دلا دلاسان و, و, و, و سن و هم بذاری یه چیزی درست کنی تا باید کم کن تا بعد کمتر اینکه درستش. درس میخواد بخونی، انگلیسی میخواد بخونی، نمیدونم زبان میخواد خواد ساز سیاست می خواد یادگیری محله این یه روزی باشه که یصد چهارصد عادی چلوی صد صد تفاوتی کامل داشتی بشه دیشی نی کار بدونی چون چیزی هیچ فشار، امروز کی دنیشی، هر کمیت هم دیگه، و و بعدی تام تأثیر داده کار کردمو، کلاین علیم دلابو گرم ساعتیم دو تی یاسات یاساتم سر سردم کردی، اون کارم کردمو، زن و چند داشتمو با ارسان خوندم، چون این شاید نبود، علیا خب دزرو چون دل من از پرگفت برون اوی درازی که دگر باقی ملاقص نفید آقا زل مندود خم زلفتو بر برسر بارد کن برین ساکه براق دل, دل شید این زل زل, زل یعنی ساید زل مندود یعنی سایود کشید سایود اما علت آمانش در حافظ این است که این تعبیر قرآنی است دین من ظلم مندود بلا اون مذکوب و فاکه لا مخطویت بلا ممنوعه در بحث بر در سوره اضاق قتل باقر، وقتی بهشت به تو که دو در سایه های و عرب و جاویی، چیز عربستان وجود نداره با نیوه زیاد که نه، نه بریده میشه نه من میشه کسی اونجا رو خفتم زندگی کنی کنی این ظلماندود، حمیر قرآنیست و اون وقت، لطف قضیه بیشتر میشه وقتی که فکر بخونیم توحافظ سایه خمزورت و محشوق رو به سایه که در بهشت هست پشکی کرده این لطفشو چند برابر بکنه و مسئله اصلا اینه را الله بزنی نداشت زل و منبود و اینا البته مردم اون روزگار بیشتر از از برای قرآن بودن، بچه مکه اتبینی ها اول قرآن میاد میره بعد علیه این است که اینا برای خیلی آفشنه زل مندون به خم زلفت هم بر سربار کن بر این سای قرار به دل, دل شیده آقا شد دل این دیوانی الان هم در زبون یهودیان ها شوته و بیبونه و برکرمونجا شیت میگن آدم خلوز و بیبونه و شیرین هر میگن شید و همه اینا به همین شیده ظاهرن از یک شیده دیر شیده این در بیدن از ناز به حافظ نید اول سرگرانی صفت نردس رعنا رعنا گفتم است که با اصلا خود خودپسنده رعونت با این به معنی خودپسندیست و رعنا صفت خوبی نیست نبوده یعنی به نصفت بدن ولی کم کم اینا خودچون رو میگرفتن اینا آدمای های خوش اندام و و خوش ای کلمه اینا جوان رعنا الان مثل یه که وصل مطلوب و چیز داره ولی اصلا مرده مردس رهناه این مردس سرش پایینه یعنی را رو کسی نمید کنه پشمت از مرز و حافظ نکند نید آره سرگرانی سخت مردس رهناه زهره به شخش جایی کسی آخر پوری <تصفيق> من, <جبان دلوقتي. تصفيق> من گفتم که شاه شجاع جبون بود و زیبا بود و دوست هم داشته که زیباییش رو ستاهش بکنن این است که خیلی جاها، خیلی مطالب رو همین اگر حافظ در خانداری داشته باشیم یه مدار زیاد از اینا رو تر باورده مثلا بس می‌کنه از پادشاه قضالایی که معلوم مثلا برای پادشاه این بخته یا این صورت این هم همیشه مندوع رو به لواس معشوق درمی آورده و بعد به اسفار آدم میذاره که دقت میتونه بارید میشه میفهمه که این چیزی نیست که آن بعد مردی به بر زنی بگی باره خورمیزا بگرم با فرق داریه کن ولی باید بارید میشه بعد با. مرگز که هیچی نیست نه رعنا هست نه رعنا نیست یک گل من پایینه؟ به کسی نگاه نمی کنه، میگه نیست آدم خودپسندیست خودپسندیست که نگاه کسی نمی کنه خدا نگاه که یک کسی ما این تحویل گرفتن دیگه نه این دو اصل اداله هاونی نیست و اصلا این کار بکنه نشسته نمیگه سید شهابی از این مطلع این غزل کشید نمید خود بخن. من این کار شرابی چه حکایت باشد؟ غالباً اینقدرم از به چه باشد من شبها راه تروازه به انبازه خودچنگ این زمان سر به چه حکایت باشد؟ یه این سر به رهارم نمیاد. نمیارم این از راه نبرد معذور است عشق خاییست که موقوف هدایت باشد بنده پیر موانم که ز جهلم برهم پیر ما هرچه کند عین بلایت باشد تا به قایت ره میخانه نمیدانستم ورنم مصدوری ما تا به چه قایت باشد زاهد و عجب و نماز و من و و نیا آتا خود به میان که ایناییت دارم از این گسته نخفتن که حکیمی گفت با تو گرمه حکیمی میگفت باید باشه باید باید باید باید غلط داریم اینجا نداد نداد ایداری باید نداد مخواهم من جان هم کنم پر ما نه، بلد بارودم دوش از این که حکیم میگفت حاخه جرمه از دوقد جایه شکاید این چند تا نصف اوال دارید بهتا هفته هم یک که فقیحی میگفت همه جا میگفته نصفه، باز نصفه نصفه غزبینی باز خلقالیی که رفیقی میگفت میگفت و هم نیهی با هر حال داره نه پا این وزاله نسبتاً ساده است و خیلی خودشی دیگه کارتشی با اعرض کنم که من این کار شد بعد بار هم و بعد بارها اینو گفتم و باز بازم اعرض می کنم که در حفظ هم شراب و شراب اندنیو هست هم شراب روحانی هست و اشاره به این هست و اشاره به اون هست و هر کدومی شو به بخواب بگه این هست نه اون یکی اشتباه هر دو هست میمونه که این کدوم یکیه و اصلا شگرد حافظ اینه سرش اصلا صنحت بزرگش ای و ایهام همینه شما رو به تردید بیندازه لغتی که دو معنی داره فکر رو خواهی که کدوم معنیش مرادش رو و بعدم هم هر کدوم بخواهی بذاری میبینید سوار میشه و دلسته. من و این کار شراب این چه حقایت باشد غالبا این عدل که حقایت باشد من که شبها ره تقبا زدن با دفت این زمان سر برهارم چه حقایت باشد و همجور که آقای چابی کندم این زمان سر برهارم چه حقایت باشد زاهه در راه به رندی نبرد معذور است عشق پاریست که موقوف هدایت باشد بنده و مغانم که ز جهلم درهان کیل ما هرچه کند این بلایت باشد تا به غایت رحمی خانه نمی دانستم مرنم ما تا به چه غایت باشد زاید زا و اوج و نماز و من و مستید تا کرا خود زمیان با چه انایت را اونش از این دست نخفتن که حکیم اینی بود حافظ از بعد جای شکایت باشد. از کنم که چه ساده است چیزی مهمی نداره بی خودی وقت رو سرک نکنیم سرش راه تقوی و زدن، راه زدن، راه تقوی رو زدن، این تقوی رو این تقوی رو از این بود. زهو و راه برندی نبرد. نظر از این رندی تا دوره سعدی، حتی در آثار سعدی، به منی آدم ویسارو با مولاد و عباش و به کار میرد حافظ این کلمه رو یه مهره تازه زده به یه صورت بیگری بوده که خودش شخص خودش نظهر تمام ایار این رنگی میگه پر شمرتری شمار یه رنگی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکارون هست نظاهر این خیلی داره قلاع مهمت رنده هم رنده آفیتسود هم که در در صفتی کیمیا داریدن و نظاهر این تیاده رقاحت رنده که بازه نمه با حفظ بر میگاه کنید این چه صفاتی بر داده و یک چه همینه میگوید که این مسئله مسئلهی رو که از قدیم وجود داشته که توفیق الهی و سعادت در دنیا موضوف نظر حق بسید و اگر خدا نخواسته باشه کسی هر کاری بکنه جای نمیست اگر خدا نباشد زبنده این کشمو چقاعت همه پیغمبرم ندارد دنه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این مقبل است که آن مردید یا جای دیگه سعدی میگه که پیش از من و تو در روح جامحه کشیدن تو نیگ بختی و نیگ ببختی حافظ همینه میگه تازه شاهی طلبی گوهر زادی به نماد ور خود از گوهر رو جمشی بکریدی میشود خدا هم بودی خرد بکرد در قصه سعدی بحثی داره میگه وضعی بود که متقدی که یه جوان اینو جوانی که این خاطیل و زبوده این بالاخر آدم میشه و بچه و حالا با مردم صالح میشین و درست میشه و شام گفت نه و بالاخره نظر شاخت کرده برها این نظر اصلی بوده با اینکه در مورد اون چیزم در مورد اینکه پشرتر یا تذبند یا حدیثی هست ما امین موجودن اللا وقت یو بد دمه ابواه و هفده همهی و یو نسره همهی و یو نجسانه هیچ مقولی نیست نگه بر فترت یعنی بر مسلمانی و فترت میکو زاییده میشه پس پدرانش هستند پدر نادارش مصرور یعنی پدر نادار او هستند که او رو یهودی میکنن یا نسرانی میکنن یا مجوس میکنن. این معنیش اینست که اینا تخصیص رو که البته من نمیدونم واقعا چرا این درسته و این کسی که بایی از یک پاور نواری به دنیا میاد طبعا که اون خونه بزرگ میشه و با دینش به دنیا میاد اما برحب با این, که این هست و اون وزیر استناده همین حدیث هم میکنه اما اون حدیث دیگه از چقیل و شقیلون دیبت نهانه و سعید و سعیدون نامه، اون سوجهاشه و تهوری اصلا تعلیم تعبیاته قرنهای های از این مسلمین همین بوده این از که میگه که اگه زاهد برندی یعنی فهمیدن و رسیدن به یه چیزی و برد کاردن یه چیزی هنوزم بر در اسفهان که میخواهم بگن نیم فهم میگه رمین برن راه نمی برن زاهد راه برندی نبارد محضور است عشق کاریست که موقع پر ادایت باشه که واضح ادوات اولایی باشه نداریم بنده ویر مغانم که زجهلم برم هم کیرما هرچکنت این ولایت باشد در نصی قذبینی هست انایت باشد و بلایت مقام اولاییست در حوزم وضی یعنی دوست کار وضی یعنی دوست اما دلایل فصل مقام پایین بس نبیه نبی معادوش بالیه اگر هات یعنی هم ایستانه با پیران فصل متفرم یعنی که این به مقام نداره و این اشاره میکنه به این که پیرماه طبیه طبیع ولی هسته و هر چی بودن این معلومه برنسو از این اینوات اونم درسته اینگه برحال من بنده پیر مخایم که من را از جهر رهم گلیم برای عشق به خلاف ظاهد که تا به غایت راه نیخانه نمی دانستم نگه نمی دونستم راه میخانه رو اینجا دیگه با اون پیر مخایم من احتمالا تنده سوفیان رو داده به غضیه تا راه نیخانه نمی دانستم برنه مستوری ما مستوری رو هنیه در پرده کاروکردن میده. حالا من حفظ مستوری رو همراه مستی میره. مستور نگرم چیزه چشم تو بی همونزدتار. هم مستور هم مستی. مگرم چیزه چشم تو بی همونزدتار. و من مستوری و مستی همه که از میگه که ما مستوریمون چقدر دل میتشیم اگر تا الان ما مستور بودیم یواشکی بید برای اینکه میخانه رو بلا سنید یکی مید که, که در این جریانات عرفوری ظاهری هست اون میکه تو میکده میخواهیم در حال دیگه میداری و که خامنهای کشورشون عرفور هست میگن که آه خب بلنش رو بیا همه بله درست میکنیم مذات میزوریم دوار میزوریم درست هر چی میخواه قصد میزوریم من دوام جغوب و غور اگه اینجا باید میدن میزوریم دل غلوه اگه از میزوریم نوگیه اگه میدن اکده ما ایچه میده هر زهران این درست نه <تصفيق> <متحد> حیرت این است که اون محیط و اون ایستدان و اونجا و اون دوستانی که اونجا هستن که حوال هده کسی بود وقتی امیره که همدل خودش حالا بعد و خوب شما افتار نداره قاسبی رو قاسبی رو, رو هفت قاسبی خودش رو هر کسی تحکیل خواه ولی به هر حال اون, اون حالت اون محیط رو که نمیشه ایجاد کرد این است که دیگه اگه من که حالا مصر توی رو بیدم برای این تا به غایت را این می‌کنم بر برنا مسئولی ما تا به چه غایت بخشد زاهد و عجب و نمات و این عبادت ای رفتارش همینه که خیلی خیلی خیلی غزدادی و خصوص بر اواخر آن که به اصطورت بر, بر تماماتات شدید سپیان ریدی کرده بود و راهی می‌شردن و به قول خودش خیلی چیز می‌کنه که این کسانی که تا چهاراکت بنوز می‌کنم فکر کردن سرخاله‌ی خدا شدن و باید بندر می‌گاه می‌کنه خود می‌کنیم از که رشته‌هاش لا خود واسه‌ده‌شاش هم هست این که جهنم می‌کنه اینکه این همه نگاه و کسی تا آدم حساب نمی‌کنه فکر می‌کنه که خودش دیگه جاش بر در وسط دهشته و این خلاوه در همه هج روحه دیگه این اوج پدار رو و رایی کردن قرآن این کسی قرآن میکنه و نه هم هم نخونده خالص شدن که دیگه هیچطور باشون نمیشه حبقت دیگه که این کارا مثلا میگه نماز احیا اولوی الدینش دستور عبادت که میگه میگه که مثلا نماز شویدش اینقدر اینقدر بخونه این هم اینقدر قفیه باقیش را رایی کردن خیلی لزومی دیت. گرفتار اوش رو باید همین حتی اقل نماز انجام بده. اون چه باید گرستانی این صورت ظاهر نماز همین و بس، که من رو در گرفتار عجب بکنیم در گرفتار ریا بکنیم که میگه زاهد عجب و نماز رو من اونستی یا تو خود زمین بر که امیاد باشم این عین همون است که بید دیگری که میگه که صالح و طالب مطاقیش که قبول است و چه بر هر و شایفیت غزالم همین بیده زاهد و عزب و نمر تو من هم تا تو خود زمین با که منایت تو دونچ از این که حکیمی می هر فزرمه از تو دوباره تو آخر منو چی خاطره دانش معرفی می‌کنه آها پس در ene halha قرآن به هر تو ما این اگر بگیم که مست باده حق و ناس حکیم اهل فلسفه است باش بعد اگر بگیم که مست باده انگوریس است بازم به دلیل حافظ بودنش بعد می‌گاد تذاد میگو اول بخیر شراب می‌خوریم تو خیال حکیم می‌گفت خودش که نمی‌دونه که به درد می‌خوره اون کی می‌گه می‌گه خودش که نمی‌دونه اینطوری که بذل아요 دیوانه خب من اینقدر شور که این کار شراب رو نکنم نکنم اینقدر این چه باید این استفهن اینکارویست تریز این اینکارویست باید این کار شراب من که شب ها زدن ها زدن بازد چند همه تانو سرا بودی سازن خود بودی سازن زبگیر پاید نه صوفی نه همه صافی بیغش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد صوفی ما که زغرد سحری ماست شدی شانگاهش نگران باش که سرخوش باشد حشب و بد گرمهک تجربه آید دنیام تا سیه رو شود هر درو در خط ساقی گر از این گون زند نخش برا ای بسا که به خوناه منفش ناز پروند تنعم نبرد راه بدونیست آشقی شیوه رندامت بلا خشکا قم دونی یه دنی, دنی چند خوری باده و ای اک باشد در دانا که پشبش باشد دن و سجاده ی حافظ ببرد باده خوری گوش شرابش ز ساوی سردی مگه از منم که خیلی فلسفی دیدم. خوبه. یه فارسی شده که چون قش قش و هم قش میگفتن که اینو بخونن قش. بلی قشتی با با قطعه با و اون رش اون هم عربیه اون رشیه رشیه و کسی که خشت میکنه بشه میگن یعنی کسی که خشتیه <تصفح> تو با ولی این قشت، ازش کلیمه مخشوش هست. قشت یعنی فلز اندک ها، یا فلزات گرنبه ها بزنن یا هر چیز اندک هایی که قارب به چیزای گرنبه ها بکنن، تو عب توشت مثل مثلا شروط قند که تو اصل بزنن. این قشت. به اون جنس رو بهش میگن مخشوش. بقید برای یک چیز اصطلاح جدا برای مش که بسیار گران بوده برای از طلاق اون کسی <تصفح> <تصفح> که مشک رو مخشوش میکرده بیشت گفتن مرد ده مرد ده دهش از دابند مرد ده یعنی کسی که مشک تقلیب نشک مرد نقد هم عرض و بحث زیادی هم دارد ولی هم نقد یعنی طولی که نقد شده بعض از بحث و بحث به از باز اویار درست منطقه ها هر چیز صاف و پاکیزار هم میشه گفت نقد نقد دل داره چیز و فیصل نقد جان نظاره اونا باید، در این درست حادث اصفرانس میگه نقده سوفی اینجا عویده ای سوفیده میگه سوفی نه همه سافی بیغشت همه سوفی ها تو قسطتشون چیز بیغل همیشه نیست ای بس آخر، ای بسخه هست کنم که شاستوی آتش که و سی شش و ده دو نسخه و ما کردیم مستوجه بخونیم چون برای تو ممشنیم نصیر خاندادی که نصخه هایون متور از دهت ها شایست هست اون یکی ای بسا اون علفش علفت یعنی چه بسیار ای بسا یعنی چه بسیار مرد سافی سوفی بهمه سافیه بیغش ساف هم اصلا سافیه یعنی کلمه اصلا یه از اسم فعالش میشه صافی بعد در فارسی شد صف بایی نشینی که بعضی جاها در نوشتن این یه یه تهش رو میم داختن تندیم میذاشتن صافین بعد کمتان این در فارسی خوندن صف و شدید صفالله قلمه اصلش صافیه صافی بیغش یعنی نای صحبی که دارش قلقه شید برمشه. ای بس آخر گوه که شاوسده و آتش باشد سفر این که سوکی که سوکی ها شاید چه چه اسم سوکی وردی. با تحکیباتش صوفی ویش رو نمیدرن صوفی افکن که بگیره شاید چسفتاد در فکر میدرد. تقریبا هیچ موردی نیست که با لحن محفظ باشن هسته تقریبا یه جاهایی خونسه است اونم خیلی کمه بیشترش انتقاد به همین دلیل اگر ما ملاحظه دیوان و ملاحظه معوارد شما بردارید نگاه دنید و از کنو پرسند نه تا بگید به گواهی دیوانش بکی دیبان. نازد یه هست داشت حتما وقتی حتما وقتی حتما وقتی حتما وقتی شعرش هم شعر سوتیانه است من بحث مفصل کردم اروزی خیلی مفصل که تو که میگی که مفصل سوپی نبوده وقتی شعر تفسیر سوتیانی میکنی شعرشو بلیش این هست که تصوف از نظر نظری که بد نیستش که خیلی هم خوبه تو ها کسانی که دایی تصویستن این درست عمل, عمل نمی کنن. من مسلمانی بعد این مسلمانی بده آقا. این قواهی که برای مسلمانی گرشتن که بعد نیست. اولیش اینه که المسلمون انسلم المسلمونه هم یاده ایو الاسلامی. مسلمان اونی که مسلمانی دیگه از و زبانش نراحت نداشن. سال بعد دورو بزرگتن این گناه او گفتن دروگو دشمن خوب ما پیش بایم دین رو میبینیم که مثل ما بزرکن. مثل میسی خیشتی شیره از دنشون خب این ربطی اون سردونی که ما داریم چیم حافظم همین که شعر حافظ شعر است. ولی حافظ به دوابی دیگانش کفی نیست به همین دلیل که امیدشو همهشو به ایما بسته بوده و بعد اینا بد و آ مرحله کارش هم برکردید. صوتی ما که زبرد سهرین بحث شدید اونها رو جذب و اونا رو میگرند باست که سرخوش باشد. میوزده و تبلگاهی. خوب. با. خوب خوش بود کرد محک تجربه اولاد خنیا. محک و تشکید کار اکستر میل اسم آلات حک یعنی ثابیدن این بید افکاد یعنی محکم حسنا محک یعنی آلات ثابیدن زنگ است یا هرنگی است نمیدونم اندازه شو باید که با دیدن, دیدن. سنگ سیاهی که در ها و زرگاره ها ندارن تو بانگ فارگوشایی هم پیش هم میرفتیم انگوشتر تلاجات زرین کس که این جلوش بود معمولشون این است که یک خط بالا از تلایی که اویارش معیینه این سنگ نخش باقی نید نشان تلایی نورد یا تلایی صد پالست و کانه یک خط می‌کشن بعد خودشون بلدن خطی که این جنس شما رو میگیره می‌خواهد رو امتعام می‌کنه یه خط زیر اون می‌کشه بعد میگه این طلاع شما نوضی یا هشتادی یا هفتادی اوالش این تجربه رو تشکیف اگه محک می‌گه خوش بابد گر محک تجربه اوالت بمیان یعنی هرکسی دعوی این که داره بگم با علی که عمل کنیدیم خوش روحتگرد محک تجربه آیات کنیم تصفیح روی شقد هر که دارو قشت باشه تا هر کسی که دارش به و شیازیش دا داخلی داره مخشوش رو داخلی داره یعنی چیزی باشه تصفیح روی شقد هر که دارو قشت باشه این بیت بسیار بسیار معروفه و تقریبا جزء ورق و مسئله زبان کارسی هر دوتا، هر کلو بگید ناز پرورد تنعال نبرد راه بگید عاشقی شیوه هندان بلاکش بشد بر راه صوفیگری وقت که میره شخصی قرآه یعنی از ازار نظری، از ازار ترویک هدف این است که سکل میاد اونجا هدف این است که تمام استفاد محبسند و استفاد حیوانی رو ازش دور کنه و متخلق میشه به اخلاق ملاکی اخلاق اولادی بعد میگویند که گفتن بسیار گفتند که در خطرهای بسیار گاهی من اینجا حرف زدن مثلا فرض بکنید که یه آدمی محمد مقدس نصحبی من از خون روزگیر چهل سال داره این کارو میکنه فکر میکنه که پرسند تو از جواب دیگه. ولی وقتی چشمش رو باز میکنم یه که دشن رو هم میکنم یا نمیدیس یا نفسانیدیات ادم به صوتهای مقاله بگم بزرگترین دشن ادم نفس اماره است این چیزیست که در اون حرس هاییست این صورت عوض میده در آدم ها یه مولانا در نصنبی میفرماد که یه روزی محاویه خوابیده بود وقت نواز رسیدی ابلیس امت او رو بیدار کرد بلند شد نوازی تره خزار محاویه یخه ابلیس رو چستید حالا گفت که توی که کارت گنبار کردن خرده من خواب بیدم تو من اومدید میگار کردی که پشم مغازم بخونم که مغازم قضا نشید تو چه تو این کارو برای چی این کارو کردی؟ من خواست بگه اونام که چسبید، اصلاح ده. گفت گفت برای این بکی تو میخوابید نماز قضا نشید بعد تیویدار میشدید هسرت بسیار می‌خوردی و خیلی متاسف می‌شودی و خیلی ناراحت می‌شدی که چرا من خوابیدم من نمازم غذا شد و تکلیف الهی رو به جانای بردم اون پشیمانی دو سببش بیشتر از این نمازی بود که حالا اینه که من می‌دارد کردم که من اون ثباب این است که اگر بخواد راجبی این مسائل یه خوری به قطع بشتاری مثلا فرض فرمایی که کتاب منطقته ای عطار رو به گیره این منطقته ای عطار همین صدود که راه تصرف. به یه مقداری میگه که این خطرهایی که در راه هست چیه؟ حافظ خودش میگه در راه از آن سوی فنا ست خطر هست. تا نگویی که چون ران به سرانت بعد مدت‌ها خیال می‌کنید صحابی کرامت از دیگر می‌بینید ای بلیس و از طرف یا مثلا سال‌هاست چیز کردی این کتاب‌های احوالات عارفان رو بخونید مثلا تصویات‌الاولو و افتار رو فرزم‌زرمایید یا کتاب عصرورتو و عوضایو و عوضورتو و امثال اینا رو می‌بینید که اینا بسیار کسان بودن که فکر می‌کردن که مثلا جایی رسیدن کاری کردن مجاهدت می‌کر زحمتی کشیدن، به جایی رسیدن، بعدی رسیدن میزن نخیر اصلا، به امراه هم. اینه که خیلی چیزه، خیلی مشکل بعد هم مدت مدیدی هست که اینجور براشون مقرر شده به صورتی احصل برامده که به مرهداری پیلی اصلا نمیتونه کسی. براه من این داری براه که من به نمودم صدقه نام نشد نمیدونم بی پیر من تو در قرابات هرچند سکنگ در زمان نظاهرش خیلی زیاد، خیلی زیاده بریاه و کوف در ره من خسته و ضعیف ای خضر به تو جسته مدد کن به حمده این زیاد. میگن تو در راه ترک حوصهای نفسانی چون این فعن آدم حیون دیگه این این حیبانی این قرایز همه از خشن و و غذب و چه و چه, و چه و ها و تمایلات مادیون ها جس با این تقاوت که یک گوهری بنام حقلن در وجود آدمه که اگر این افتاد بلحث نفس دیگه واقعی باست میره هم جاهایی که این بلحث داید. سرمایه و این سرمایه دارا و بیزنس کنه هم نرسیدن اینجا هم نیست هیچ حیبونی ایسا نمی کنه برحال این که می گوید که کار عاشقی کار دوشباری رندان برای هم و حتی با همین احوالی که الان هست، اگر کسی بخواد بارده سر بسکره و تحت تعلیم و طلبیت پیر قرار اون زحمت و اون تجلیب که اون پیرداره از خوار مریب کندتر نیست یعنی باید دعایم اینو اصلا چلبه نشستیم، چلبه تو باید در قلبت بشی این ذکر رو بگیم، این تو غذا بخوری، این تو غذا بخوری بعد دارم مراقش باشی که این کار می کنی اینه شب دیگه اگه باید می دار ساعت توان می گرشی نماز و خونه ذکر رو گیم بعد بکنی باشه بالا سرش بنابراین کار دشواره، راه دشواره و اصلا قلبه کردن بر نفس کار خیلی است و می بارها بارها خیلی خیلی چیزی دوی بستنوی این می کنید که نفس آدم تریپ دیگه به یه صورت یعنیت دادم فاید که نه این اصلا نیست اون مطلب اصلا چیزی دیگه هست باید میگو این است که میگوید که مرات پرورد تنعام نه برات راه بگیم عاشقی شیبه ی رندان بلات. باز کلمه رند به همین معنی خاجه در اینجا هست دنگ دنگی دن چند خوریم بایده بخوریم یا بایده بخواه خود اینجا دنیا که اینجا علاقه صورت نومی برای ضرورت شده دنیا یعنی جای نزدیک دو تا مستر داریم یکی به دنیای دمیه دنیای از این یکی صفت مشبهش میشه دمی یعنی پست دنیای دمی... یعنی دنیای پست. ولی خود دنیا یعنی اون که نزدیک. و یکی رو بهش آخر یعنی دنیا مهنس ادنا مذکرش دنیا مهنسش. یعنی عالم. دنیا عبوددنی چند خود. یکی در تسبب خیلیش شده همین گیدان در مقام رزاست. و آدم اگه در مقام رضا بود، اون چه از جانب میرسه او رو خودش میتونه و ناچار خفصه او اصلا چیره شدن به خم و سعی کردن این کادن خم رو از خودش دعب کنه و یه این خودش مجاهده زیادی میخورد این تربیت میخورد قلبه کردنه بر همه ی عواصف قلبه و خشت یک کسیمت خشت به شما رو برای گفت که بر مستوی هست یکی اون قصه بسیار جالب مولانه علی عموز اخلاص عمل و هر را در از بغلب بر غذا بر قهلقه هم دست یا عفض یک برابر او خدو با بر روی علی استفار هر نبید هر زمین مردگر و شمچی بخوشش توف انداختی صورت از خدو و خیان هر دو یه وقتی که توف کرد به صورت اعزاد بلند یه قید یه شیز کرده که چطور شد؟ مرد فکر میکرد احامله هده زندگی شد. دو شد دو تنها کاری که میتونست بکنم که اصلا توف کردیسه بعد که مولا فرمون گفت من تیغ از حق میزنم بنده حق هم نمعنو بکنم میگه من تو رو دارم راجع میکنم براه حق دارم کار اگر الان تو خشب من برانگی شده، اگر الان این کار رو بکنم تو رو یک قسمت لازم از این عمل من خاطر خودم با روز حقا حالا این که این کارو کرده نکرده من نمیدونم حالی برای تحلیمی که مولانا در این با اینه این کار دوشگاره که آدم بتونه به خشم خودش بر اون لحظه ای به خشم این که از خواستی که ادل از کار مینزید آدم قلبه کنه به این خشم نه دوشگاره این همه تازه مرحله تر تو. اول باید صفات ایلانی خرک رو کنه او بر طریق فرق میواست ترکولا فرق میواست ترک دنیا ترک اغبا بهشت جهنمینام از بیزه کنار بهده اولاد اگه میتونم بر رضاحت افرانی که قابل پرست کشیم باید نایرم که هم جایی میرن نمیرن افتا چه برن چون عمله می ترک دنیا، ترک اقواه، ترک ترک یعنی بعضی که پیر بهش گفتی خب تو ترک کردی سفات زشت ترک یعنی محمد تازه بیت دوره و دنیا آیدنی چند خوری باغ هیچ با باشد دل دانه که مشبشت باشد تشویش یعنی ازدراف نگاره خط ساغی گر از این گونه زنب نقش براب ای بسارو که به خونا به منقش باید نقش براب زبن که نایی از کار بیحاصل با بیروده کردن اینجا مرادش این نیست که ساغی کار بیروده میکنه. یعنی خط ساقی نقش دیگهان رو بر آب میزنی یعنی صلاح و تقبای و قهارت و اینا رو می این رو میباری اینجور که مرد بر آب میزنی یعنی این چیز رو به آب میده خط ساقی گر از این گونه زنب مرد بر آب ای که به خونه آقای منبش بساد رو بل و سجاده ی حافظ ببرد باده در شراب از سخت آن ساهلی مهدش نسید این مطلب که حتی جایی گیر یه خرقه جایی جای گیره و دختر جایی که ظاهران است من قبلاً شاید یه بار گفتم ولی بارید به این مطلب رو که چار کنم شعرور بیست ونمه سلمه معروف شده است به سلم خاسر خاسر از فسارت یعنی زیانفار قلتش این بوده که این سلم خاسر یه مصحب داشت یه قرآن داشت این قرآن بود نیکتی گروه و گذره و با به این بلیل معروف شد به سلم خاسر سلم زیان قارد. و بعد این مسئله گروه برشتن سجاده گروه برشتن دلغ و گروه برشتن وحساها روز رو تغمه ندر میکده همش اشاره اون عمل سلم خاسر این آه، صانت دیگه دوشتر خیلی که بلق، بنی بلق، خرقه هست سجاده با دیگه باشی، یه چیزی، چون جای نرزگذار برای نحلی که گذار نرز نرزمه نرز نرز باید حق باشی یعنی از مرگاه نجس این هست که اینا چیزی مثل یه خالیسی رو پوچک روست می پارچه و نخی از برای زیلو نازوک از پارچه کلختر، ولو از از نازوکتر دیگه از ارزنگوینه هست تا گرنگوینه توش هم یه نقشه های از اینا هم که مربوط به ننازوگاه هست مثل گل بسته روش و این رو نوازگذار جهن میکنه، نگهن میگره اگر خانمان و چالور و نوازشون و رو نهارو تاسفیشون رو این اگر هست رو بسات چون میزهد این و وقتی میخواد ناز بخونه چون فرش ما رو که دیگه پاس دیگه دایه مکنی شده باشه یه قطره خونده شده چکیده باشه یا بچه خونده شده باشه کارو بطب داره باشه میشه این مجلس برای اینکه احتیاط از این نجاستت برای یقین داشته باشن که جایی که نواز میخونن حاکه و طاهره این سجاده رو نیندازن و روی اون آغاز و بعد اسطلاح شده هسته پیران تصفقی که بعد از یه پیری و در یه سلسله میان این رو میگم سجاده میشونم ما وقتی در پاکستان بودیم و پاکستانی بودی. که بزرگتانی پیران تصفق چیز هست دیگه بهایدین زکریه های ملتانی در شهر ملتان شهر ملتان جمعیت رو مردم خبیل گرم مارای خیلی خطرناتن داره و یک کراقه ایست واقعایم کسیج وحشتناکی و اینجا مرغت شیر مهایدن زکریای ملتانیست مهایدن زکریای ملتانی آبا نیست که عراقی فقدین فقدین عراقی شعر محروف قرن حقوم هم. از حمده هم اینجای سرکسیست پو گل آبیت همیدانی که غربی که میگن گربه، گاهی و روی دیوار که از این دیوار از این هم درمان این شده دیوار یک ساید و از اینجا بلند میشه برای به عشق و عجیزت های ملتانی میگره چیز میگرونی ملتن... که نزدیک ملتان یه ماهو هست در بلوشستان سیگه که نگه اونجا گرم تا این نقطه روی زمین اونجا هر راعت مستوسط ممکنی جاهایی باشه در طول متوسطه در سال رو طب کنی اونجا هر راعت ولی اینجا بالاترین درجه هر راعت که میشه اندازه گرفت در اون نقطه این نزدیک ملتان یعنی جای اینجای بعد این زکره ملتانی میاد اونجای می و اراقی میاد اونجا سر میسوره پایدین زکره ملکنی و هم بهش میگه که زکر بگو چه بگو دستور میگه نه شب که میاد به سرکشی اونه که اراقی داره به آغاز میخونه نخستین باده که اندر جام کردن و حالم هر کجا در در بود به هم کردن و عشق اشناب کردن سرزو شیخ رایدین این مرد تاقصده از خلوت آوردش کنجان بعدم دفتارشو داد به نمیدونم ها دفتارش به جنس خوبی بودی <تصفيق> <تصفح> <تصفح> به هر حال دفتار بیلی دفتارشو داد این مرقدش اونجا است به شخصی نام سجاد حسین قرشی مخدوم است سجاد یعنی آقا از که مردم اون بعد میدونم مختون سجاد حسین گروشی سجاد با دینزکایی ملتانی بود و از اخلاف او از بازماندگان او بود همه همونده اصلا در بحث از دوره با دینزکایی ها مغبره های دونه دونه این سجاد نشین یکی, یکی اونجا بود این سجاد حسین هم بسیار مرد بود مرد ایران دوست هم بود خیلی خیلی احل عدد به بود و سروت بیچاره اونی که اصلا قصفی بندن داشت و همه جوره اون اصلا ایمانت و مردمی بودن که از حیبارواز سند پیاده میامدن تا برای اینکه در روزهای عرصه و این بزرگم تیران تصرف بودن جای جا جا این ام این ما رو برن زیارتگاه و بزرگانی زیارتگاه های قلد پاکستان یکی با عدیزه کرده یکی هم عبالحسن غزنبی عبالحسن عبیرد عثمان روزیدی غزنبی صاحبه کشکل محجوبه در لاهور که اش می کنم داتا گنجبرد شد اینا سروت بیکرام هست در تخیلاش اینا سجاده نشونیش هم دست داد و نفر دوزه یه مراسم هست که اول صبح با عین و سین میان اینجا با این قیر مبعثه همه اینا رو شام بده و همه اینا جواب بده جواب بده این که این چی هواتام رو به قرن بازشون میان می‌خوام هیچ چیزی هم به اسم قضا بشو میان این چیزی مهم نیست ولی تو من که می‌خواستم بزن تصویر اصلا ما اردیبهشت بود بعد دانشگاه او تمام دارم زبان انگلیسی و قبول تو دانشگاه و مصرف حسابی پاید یعنی چایی ارژنه ها حرید سبجاده اینا رو می کهتن سبجاده نشونه. و جانشینان و پیران بزرگ رو بشتن سبجاده نشینه مثلان کلافی بلقا سبجاده ی حفظ ببرد باده بروش که گر شرط داره کف آن ساغلی همونجور که تو اون چیزی دیگه بشن زب چی بود؟ شد رهزن سلامت زلطت بود این عجب نیست گر رهزن توافیست نبکار من تبان سممم این ایوه هم سلمان باسه چه سماره؟ من درست نمی دونم ولی برای جا جواب جا می شونم درست نمی دونم ولی در دونه اولیه استامل شد ولی نیگایی هم می کنم، که باشی در ته هم دیمونی نیگایی بکنم امیدوانم. نه سلم، سلم، سلم، سلم، سلم و اصورم از حسر خسرم که یه نیزیان خوش از تلوت اگر یار و من باشد منم به زم اون چمع انجمان خواست من نگین سلیمان به هیچ نستانم که با به قریب بست به احطانان باشد. و با ندار خدایا خدر حریم و محرم هرمن من باشد. خنای بو مفکم ساوی شرق هرگز بران دیار که تونتیکم از زفن باشد. بیان سوق چه حاضر که و دل طبان ز زی سوزی که و باشد توی تو از سر نمیده هاو و را دل سرگاشته با بطن باشد اگر ده زبان شد تو قنچه پیش توش موه بلازمی پهمه که اظهار گله رو شکره و اینطوری که به نظر میاد از این التفاقی مخکوم میگه رو شکره و برزن بی نیازی خودش رو هم نشون میگه خوش از خلوت روشن میگه خوش از خلوت اگر یار یار من باشد نه من به زمانشن انجمن باشد. من اون ننگ سری من به هیچ نصف که در وقت بر اون قسط اهره من باشد. باصبح نگی سمان و هری این که حتما چ میگیر که انگشتکار رو و این بست او ای بود و عث اعزن بر اون نچ بود. و سولیمن به برکت اون و به برکت اون انگوشتاری بر جمعه فرمون بغاد و وقتی که میخواست بوده به طهارت جزد که حالا بهش میگن رسته اینجا برای این که چیز باشه این انگوشتاری پیرون رو پیرون میگه و و حالا به کسی میگاه می می کسی می در حال در این فرصت دیدی خودش رو به صورت سلیمان کرده و آحمد رو گرفت و دستش کرد و رفت به جای سلیمان میشهد سلیمان آمد بیرون هرچی گفت که اوامان سلیمان رو نزد انگیم سکرنگو رو چیز نبود در حقیقت مثل فرق ویزدی که ازش در گلاسات چه احنا میسه رو که برای مشروعیت در حوضت و از هست داده او برو نرسی اتفار تویید شد. رو و رفت و اون دید سلیمان نشست و اسمش هم گو با بعضی مداروش آمده است. و از سخت و بساط. این صحف رو جنمی نشست مجای سلیمان و چهر روز بود و در حرمسرای اون میرفت و یکی از زنان سلیمان که دوی از زن برگذیده اون بود دید که این حرکات در رفتار این شخص به سلیمان شباهب نده و خلاصه خودداری کرده میکنم از که شبا اون ولی سلمان رفت و بدبختی و گرفتاری و این بر و این به یه جایی در دریایی خب در اون سیاد می اما چیزی خواست می گفتم که یه برای کار کن سیادی هم کار گشتباهیست کنم که خوب بسیار چیزی کردی ماهی گیری نه سال هم یه می گرفت و می رفته چرا روز این بود تا یه روزی اون دید نمیگیمم به چه میره مثلا اون لغو دادیا و لفت دروس کنم که نیکیم کنه سیواست کلیمان دیگه بیگه رفت اونجا و انگشتری ازداش رفتاد تو آر و ماهی اون انگشتری رو بلکی رفت طلیمان که نشکل به ماهی بود آمدند و ماهی گرفتند قومت خوردند و جمع سهم هر کسی رو سهم اون ماهی که انگوشتری رو بود سهم برامات با و بعد کسی کامش کرد رو کرد و آمد و بردخل. بردخل. بردخل. بردخل. هر که اول دو دو چندگاه که اگر قصه هایی دوغنبران به فر عبادتون منگه یعنی یک چارو میست خونبان این قصه هایی دو تا قصه هایی دوغنبران هست در که بار یکی او و که مردم و حبیب یغنایی تصیل کرده و خود چاپ شده و این قبیم که این قصه این من نمی روستن حقیباً یکی از شاگردن گفت قبیم که این قصه سل الانبیه هایست که برزبن های فارسی و عربی نمشیست که اصلا قبیم که و خیلی هم معتوره مختصره معتور زبینش ساده هست و معلف گفته که من جز این قصه ها جز از آیات قرآن و حدیث های خیلی معتور از جایی که زیادی ایناو چیزانی که انتولی که فریادی باری ناشده اصلا بکار ندارد. یکی هم کتاب دیگری است نام آن کسی که کریس کوران، از کسی که امپیا متفاوتی. که در کوران کسیها یه هم آمده است که به کیان برام متفاوت نیست. نساس قرآن رو استاد ونده آقای یحیان مهدبی استاد فلسفه از یه تفسیری که تفسیر رسیار با عرضش راس تفسیر تفسیری فور آبادی یه خلاصه این نوست و سه بومین تفسیر است که فارسی نوزید و یه خلاصه یه از این تفسیر بر سر طربت شیخ جم و دوات جاب در چیزی بسیار نفیس زیبا و شاهانه ای بین مردوم عباسا ر حکمت که تو باشی آموز این قرغسات و اصل از وسط سینز با پس بگین تفسیر از جی پیران با زیر خوانان باشه که از بین چیزی چه کسواده فارسی رو تفسیر در وقت تفسیر تو ذات که خلاصه اون تفسیر سوراوادی سی این آقای رسول مهدوی قصده های قرآن را از روی این تفسیر تربتی جمع گرفتن و اون جایی که احتیاج تفسیر سوراوادی هم مقابله کردن و کتاب درست کردن اون کتاب هم تازه مجدده چاپ شده به نام قصص قرآن برگرفته از تفسیر سوراوادی و تفسیر تربتی جان و تیس ها چهار این سفرست، این بیتو کتاب بیتو کتابی سوی خیلن برای رقعه اتیار چنان کافیه چون اینکه واهمی بعضی عظیمتاره هست که تو اینا نیست و آدم مجموعی که و مراجعه و مفصلتر روزی کنید ولی کافیه اینا برای اینکه بسیاری از این مسائل رو درد بکنید و اشارات اینا رو هیچ چاری نیست این که اینکه اولا حصه های پیغمبران و روایت دفهم هم در های هماسه ملی ایرانی یعنی قهران ها شهران ها در هم که برامرز که بیژنگ کیه توسکیه بی نمیتونم مستی هم که قریبولز که الاخر اینا بهشون اشاره شده به سرگوزششون اشاره شده وضعشون اشاره شده در شعرهای مختلف شعرها بله که به هم میگه که بودم سرمست قوت با بود چون برگوزششون اشاره شده به وضعشون اشاره نه لاقل رستانم در اون مصبی نه پنده پشلوکن نه اگه از چی بزار میگردونی زد تیلی چشنم از آهن این چیزو میکنم باید پشلوکن رو بشتن سیدو رو بگونید تا بعد لطف لط لط. اولا بفرمید چه چی میگه دو باید کنید است که چپ نشو که تفصیل گرابادی مفصلتر او یا که چار که تحصیل تحصیل من درست نمیدارم که جسده او بودی؟ فقط در مورد سید یا هم موردی؟ من که منم نگیم سلیمان به هیچ نستانه که گاه گاه برای این دست اهرمان داشته رقامه دار خدا یا خداحریم به سوال رقیق محرم و هرمان نصیب اولا ببینید که با حریم و محرم و هرمان که همه خیلی شبیه و همه چیزی بازی کرد دوباره چند بار اینجا گفتم که روید به من چه امروز می‌بین نیست روید مراقب یعنی نگهبان و معشوقتیه سر و سرم بالا سن شوش این سعدین یکی را جوان صاحب جمال برگذشت و نوازم تیر فرسید که علت تابیل بر خان بنا رسیدن زشت حال که تو ناگرد چی بگن گل به تاراس وقت تو خار بماند گنج برداشتن مار بماند اینی که معشول یه رقیب دشته بوشه به درد خالش میکرد به درد یوبا وما و مادر و یوبا و طبرحبین یعنی و حرمان مس این ضمانت غیر محرم به محرم و حرمنا وجهش نیست محرم یعنی دیوستی با بهرگی فرق حرم و محرم از حرمت یعنی احترام هما یو متفکر ساوی شرف مرتی چند بار راجع به همه هم حرف گفته مورگو یشتارو و کاره بسوارم زشته ولی سایه شو خو و میگه می که بر شهری که سایه شراب به شهری که بر اتویی و از قم بی ارزش تر باشه بیاکن. چون چی که که می‌دونید زقن مرد خیلی بی‌پرگای شجاع است که اینا مردار کاره ولی حتی میاد تو دهات دو سطلای خواهد رو یعنی هیچ پرگاه از کس آدم اینا نمی‌کنه با این رو با ترکست که خواهد اسمش مرد گردن لخت خیلی داره رو سویان کنم با او اشتباه هم می‌کنید ولی به هر حال اون هم مرگ بی ارزش پیفایده مذکراتی است و از همین لاشه های که مرده و خاچوگه و زایی بخواست بندهی که جباله اونان استکاره میگه در شهر که توکی ارزش کندتر از باقن بشه، که سایی شرفتالی شو برمشه نورده کنیم بلان شرخ چه یه سخن آبان بهشون میگه که سوز داره یه اینجا هست حال آتش دل نسخه من اونقدمی سوز آتش دل سوز آتش دل اشکالش این هست که دوباره سوز تون نسترابعبی هم تکرامشه به این جا بودن مران فاندابی نزاش که اقلا سه نسخه سوز آتش دل داره ارز کنم که سه نسکر، دوتا پنج تا و این شش تا شیش تا، سه رو سه فیش رو از دوازده دو نسکر، شیش تاش حال دل داره سه تاش، سوزه اعتش دل داره سه نسکر هم پسیده گیری این هستی خانده داره، اینو و داره بیانه شو چه که حال اعتش دل توان شنه ز سوزی که در سوخن باشد روشن بگید هوای خوبی تو هوا به معنی میل و آرزی نیست و در زفون عربی اصلا به جای عشق عشق که من بین که عاشق شد خاطر خواهی عشق موجودی و موجودیگه او رو میگم هوا اینه هوای تو یعنی من عاشق هوا یعنی عشق آدم با آدم این هوا این به عنی مهر و چیزه من این مراد و آرزبوس و هر حال هوای پیوتو از سر نمیداره ها بریب را دل سرگشته با بطن نمیداره بریب به عنی بیر افتاده هست اما بطن معنی اندوزیشن نداره بطن به معنی اون شایده خیلی کچه کسی کردن دارش اخانی خونه آدم و حتی اصال محله آدم معنی لغبی بیرسه عبدالش و همین در الان آخونده حسنه ای میتونن که این کلمه وطن رو کچونوش بکنن به جای مملکت و علاقه مملکت نگیرن و خوشبختانه این جنگ مثلا ایران در ست تاکی برادران مسلمان امت اسلام چه معامله با دم میکنند که آمدن کردیم و بود. من آثارشون یه دستن جورشون بیگیرم. من یه تحلیل از این هرکهای ربط کمی زده، ولی باتن با حال که حدیث داریم و حدیث بیگنباریم محبوب باتمین علیم هم بحثم که ما ای خب هم میکرد. حالا ودشتن اینو یک آثار که آن کبیگنبار اینطور پر خب باتریم من چردن. حالا باتن اون روزم این منیر ماریشتوشیو حالا که این معنی پسندیده ایست که آدم با هر بخواستش علاق بشه و علاقه دنیا الان همه چیز سرعت بده کرده که حالا آدم در سرنوش، یعنی سرنوش دنیا اصلا در سرنوش آدم تاثیر برسید تا چه برسید؟ به امریکت خودش این وطنهایی سرعیم که بکنه آدم که بیاره که مخلی یه محلس، مخلی یه کوچه هست، مخلی یه شعره، مخلی یه دهکوره هست این درست. اینجا از پیدا است. می‌گه کوچه تو هوش از سر من نمیره دلش با قطع می‌شه نشون که وطن معنیش محبوب بوده به سام سوبسن اگر ده زبان می‌شود حافظ سوسن گولیست که شاخه‌های گلبرگ‌های نزو که زیاد داره و به زبان تشبیح دارن این چیزا شد و سیوسن ده زبان میگن چند بار رفته از مرق ندانم که سیوسن آزاد چه دوستگرد که با ده زبان خمش آمده تو همین روید دال بعد خواهیم بسید بهش میگه به سام سیوسن اگر ده زبان چقدر حافظ چون قنچه که شکوهش مخ بردهند باشد قنچه میسی که سرش موفق کردن میگه که سیگرد میسی چیزی که اونطور کنهان یک چیزی تو اون 16 9 بوده